فیلم بیخود و بی جهت نویسنده، تهیه کننده و کارگردان عبدالرضا کاهانی بازیگران رضا عطاران، محسن طاهرهبرام، مشکان نگار جواهریان الهه احمد مهرانفر فرهاد علی استادی راننده امیر علیخانی، سینا افسانه تهرانچی مادر الهه موسیقی کارن همایونفر احنا فکرشم نمیتونید بکنید که این صدای چی بود؟ تق تق یا تتق تق؟ بله آقای تقریبا چهار که وسط سرشم منداره زرب گرفته رو شیکمش فکر نکنید خوش حالا نه خیلی هم ناراحت مثلا همینطور دل تو دلش نیست با ساده کنار دیوار سرش تکیه داده به اون و زل زده به کارتونای بسته بندی شده ی اسباب خونه آخه چه زجریم میکشه از این همه به هم ریختگی خونه میره جلوی آینه که ضرب گرفتن رو شکمش هم خودش ببینه. تازه متوجه میشه که کمر شلوارش کج و کل است. درستش میکنه. این آقا ضرب گرفتن رو شکمش و بالای سر خانومی که مشغول جستجوی چیزی یا جایتونی آزمندی های روزنامه است و همینطور سرشون رنگ گذاشتن حالا تو این هیروبیری ادامه میده. زن با صورتی نگران روی کاناپه نشسته که روش ملحفه پهن شده. یه بچه پنج سالم کنار مبلم داده و پاش گذاشته رو دسته مبلم. دارم همچنان آدم می جبه و شماره میگیره گیره به گوشی تلفن همراهش. کم بودیم بسن بچه به این بزرگی شیشه میخور آخه تموم شد آمان تموم شد اما این برم پرکا ماشو بر. که وروجک بی اتنایی مامانشو میبینه میره تو آشپزخونه رو که زعف شوی سراغ اصل جنس خود قوطی شی رو میاره. در پنجره آشپزخونه مرد جوانی وایستاده که در حال جابجایی به جایی بستایی کوچیکه که به پسر بچم یه چشمک و یه لبخند میزنه خیلی کار دارین خوب, خوب. <تصفيق> اون بروجه از قطی شیر شیر رو همچین سرازیر کرده تو شیشه؟ ای کلی شیر روزم زمین ریخ. کم کنی تو مادرش میذنن و مزری بگله شمیدارش. سوپا تیزه. نه نه نه ببینم نه نه نه نه اینجا؟ نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه یه خودت اوه، یه خانم اخموی دیگه هم هست. مقنعه سرشه و مانتو شلوار اداری تنشه. خیلی هم عصبانی. مادر کوچا بچه‌ می‌ریدم پایاشو بیاره که پسر بچه شیلنگ آب رو تو, تو دستش می‌گود دستش گرفت و همینطور داره باش بازی میکنه ایه. مادر مدل پسر بچه تمام اون نیازمندیایی رو که داش میخوند حالا میذاره رو شیرایی که پسرش رو زمین ریخته بعدم سر شیشه رو پرت میکنه سمت مرد نسبتاً چرخ که همچنان کمی ضرب گرفته مرد عین خیالش نیست به ستون وسط خونه تکیه داده و مرد جوون که یه کارتون تو دستشه میاد از نزدیکی رد میشه و همچین لبخندی میزنه مرد نسبتاً جوخالا کلافه است فقط از بین اسبابا راه میره پسر جوون عصبانی میو میره تو آشپزونه آقا فرهاد باز نفتون شما نمیخواد میگه؟ نم. مادر به چی نمیگره؟ های و همراه شیشه و قطی شیر همه رو پرت میکنه تو سینک زرفشوی و دستاشو با پیشبند رنگ موش پاک میکنه در یه کارتون میاد باز کنی که زن جوون نمیذاره نمیخواد, نمیخواد. نمیخواد نمیخواد بچین نه که شما خیلی بدت میاد همه حسدی هست هم. مردا هیچی نیمیگن اما با اشاره چشم و عبرو بامرف مزنن آقا فرهاد همش در حال انفجار از خنده است اما اون یکی آقایه خون خونسرد و پف کرده مرد نسبتا چاک سیگارش رو باشند مرد نسبتاً چاق به تارن کبوتهایی که سق به بسته شده نگاه میکنه و دود سیگارشو همچی با حسرت بیرون میده اون سر حیات دمه در خونه ی مردی ایستاده و با صوتی اشاره به مرد نسبتاً چاق میکنه اون سر تکون میده و این یکی سیگارشو زیر باشگر میده من دارم گم الان زمانی که ما بعد همه فکرامون رو یکی بکنیم به دنبال حل این مسئله باشی. پشت بوم. پشت بوم. خوبه که اونجا 9 نفر رچ برای چی راه پلستیه اساس هم سایه ها تو باور نمیکنی خودت برو ببین بله جا نیست اونجا نسبتاً چاق میاد تو این اوزا تا حرکت ورزشی بره که شلوارش پاره میشه حالا همین کم بودیم وسط چند تا میوه اون برای حیات که یه پسر جوون سرتراشیده تراشیدهی مشغول خوردن نارنگیه مرد نسبتاً چاق میاد سمت مرد اون برای حیات که حالا داره جلوی بار پر از اسباب و یه کامیون بار بری قدم میزنه تو چه اینجاییم؟ چی؟ تو چه اینجا علافیم؟ به زور میره بالای بار از بین اسبابات ها یه چیزی پیدا کنه بله تو بابا ازم معلوم ندو مرده ازم معلوم ندو داره یه جای رو میگه کجا رو میگه؟ کجا؟ مرده ازم معلوم میگه معلوم نی کسی منو ادتت فره دیدیم احا اون باقشم اقشامون زیره ها نریزه دیگم میخوای ببارم ایشون صحابه اقشم اقشم صحابه واقع صحابکارم آه. اینا به خالی میکنه. انار میدانیم یه تهران صحابه که ردیب شد بریم میاریم ایشون این پانه سندلی من شما بله بله بله برد برد برد برد راننده ی باربری از شکاف شلوار مرد نسبت انجا متوجه میشه که اون دنبال بخشه لباساشون گرده یه ماشینبانه تم اومده و یه آلمه سندلی کرایه آورد یه رو اینجا چند هم ها خونه چهل سی بعد باشه چی؟ خونه پس حالا ببرین مادر و پدر نگران هر دو می تو همون. آ ما سن ما سن.诶 واکسینا جنده کجایی تو؟ بابا تو تو میکنه. دیگه. چرا نگران این بابا کن. بابا جان. سی. چیزی شده نه نمیكنی. مش کجا بود؟ بابا، صحابه، با. سینا بابا جم بیا دروا کن، بابا آره چیزی من پیدا نمکایم، میگم، نکن بلی ازدارش تو ها، کلی باز کن بابا نتونم. نتونم. نتونم. نه بابا چرا سینا بابا. باز کن دیگه سینا. باز کن برخورت میگم باز سینا چرا باز کن باز کن دیگه مادر، سلام سرام مادر، حالشون نخیر نخیر ما, ما در این کار شما شبیه نیست که مچ بنده رو دارین می‌گین ببخشید دارم میگم چیکارش دردن نه میگم تو مگه نخیر احتیاجی نیست این خانم انگار همیشه با همه عصبیه تنرم هم کننده رو. هستن بندگان خدا آه. یالا ای بابا این آقا فرهادم دو تا دستاشو اندخته روشونه راننده و پسر کرولال و لال دارن میارننش خونه آقا فرهاد زرتو ببین چی شده الان یالا برو چا دم درم است. درم است. برو چا. فرهاد یالا فرهاد چی شده؟ قرو میشه؟ اوه چی شده؟ زرتو ببین. دارن میگن تو هم مودار. دستونه تمیزه. برو چی؟ شوخی داری می‌کنی الان؟ سر خورده. قمصو شو؟ نعمتم به تو چی؟ نعمت پخ مرغم میخواد. دست ازبا با فراد چی کار کردی؟ تر خورده تو چی؟ تر کارت تو چی تا کارت تو چی میگه فراد شو ماشین یه برا بایدو علا کیه؟ بزرگ به خدا چی بزرگه ؟ بفرمایید شما من خودم میارم یه خواست بابا اینجا سبتا؟ دو تا قفله خب بازم بالاخره انتخاب داری یا نه بابا 10 تا الان توی مسخره بازی به چه دردمون می خوره شما هم وقت دیواری اونجا بیا بده به من بده بابا مامان جان بیا اونو بده من مامانش مشو چی باید بگیری مشوره دنبال نرم کنن است که سینا هم بازیش گرفته و اونو نمیده به مامانش بده این آقا فرهادم موچ پاشو گرفته و هی آه میکنه تکون بده نهش درد داره کدوم پاست راست یه بچه گربه سیاه و گرفته دستش رو با این بهونه سینا رو گیر بندازه و نرم کنندر بگید هی از این جیب به اون جیب دنبال پول میگرده که بران انتوانت بده اونو بده نمی دیگه دیگه بیاجا بیا بیا اینجا مو بابا بابا دیگه آقا بیشتر رو بیا اینجا موجگان سینا رو ته باغچه کنار دیوار گیر میندازه و نرم کننده رو ازش میگه پا شب آقا فرهاد داره جورا میکشه آقا میسنم پیف پولشو برینشای آقا فرهاد میزنه که مثلا خانم عصبانی عباسش پرجه پا شد اینارم بزنه دیگه برای امشم زیاده ببین بودی محمدت هم من خب بشه. پس چی شدی این مرد از درد بذ میدم دیگه دیگه سینا از دست مامانش در میره و خودشون این رو کاناپه کنار فرهاد که تناپ بگیره. ولنگش. پاشو دیگه. پاشو. واسه گوشم بنال. سینا. اوه تناپ سینا. بگیر بگیر. اوه سینا. خیلی خود داده گرفتم الان توام. بعد چی میگیره؟ اجاته کو نمیخوری یا؟ باباش فیلم براش بذار لازم نکرده. فیلمو ببرین سالن. تو دستو پایبوزو ترام چی مامان؟ نشنبی سینا تو دست و پای بزرگترا نمی آی تو هم بلش کن دیگه تو که بدتر از اینی تو مگه نمیگی کلت خب خون ما بازم با کاره خیلی مهمتر داریم الان با منی با منی جوابت موسید ای چیزی بینه لایبه گوه ها آخو برانه کلت آقا اومدم دیگه چه خبرته همین الان گفتی آقا باشی فرق. فرق. ماهواره کی؟ ماهواره میخواری بگو بیاد چی کنون؟ بیاد دیگه بفرم باش چی میگید شما به هم؟ ماهواره یا اومد ماهواره نصف کنم چی؟ ماهواره رو دیگه ماهواره میکوای برای امشب نمیخوای؟ ماهواره پی ام سی عزیزم سلام سلام سلام علیک سلام خیلی خوش اومدید قربونت همینجا بی زحمت همین تلویزیون آر اور شما اگه لطف کن کانال منتظر باشین اصلا بفرمایید بشید ما میرسیم خدمت زون پیر شش من شما کارش رو, کنم بیام؟ درست رو برو. شو. شما کارشو بکنم در آخه در نادر درستا برو شما نه وقت با من میگفتی چی وقت میگفتم میشه ما گفتم می دیروز آینه گفتم چی گفتم دیروز خب حالا چیکار کنم مادری حت خونه وادیم منو نمیشناسی تو این راه پشتمون از اون طرف میفرست خوش سرت میذارم شما چند دست نگه نگهداری من ممنونتون میشم بله جا. از داره با. باش ما میخوایم. من فقط عجله دارم با بش من ما میخوام من می جلوی تو روشن کنم مگه من دارم روشن می شما, شما هیچ کاری به نمیخواهن. این مساله ندش من خودم این قضیه رو حلش می کنم فردا با هم راجع بهش حرف بزنیم کنه عروسی شما همه چی کار داری دیگه نه من انگار اشغال آجریشو گل خیلی خب تموم شد خدا خیرتون بده. میده. الهی الهی خانم آقای راننده رو میفرسه پیکارش خدا فرس. چی شد؟ این بود معرفتتون؟ زود واسه تو بذه پایین. یه دقیقه دیگه هم بدا. برایت برایت من, من, با من با نمیذارم. برای چی شده؟ برای چی شده؟ چی؟ بابا ول نکن. من پیاده کنم. من خودم آتیش میذارم. چی؟ میتونه پیاده کنه. من بابا مجموع من به تو نگفتم نختی خانم درادی نیست تشجید رو اینجا طرف نکنیم ای ما مزایمتیم آقا من چیکار برم آقا خانم یه لحظه سب کنیم خوش اله خانم گوش منشمت ببین ما ماه بره رو وز کنیم خب بعد این رو این بقیه کنالا قفل میکنیم باز بمون جمهوری اسلامی خوبه؟ ماشه نه قلبی جمهوری صفر نزل من دارم جدی حرف میزنم بس کن نخ خراب بس کن چجوری یه جوری من خودم آدم با اینجا چجوری حرف بزنم محترمانه از شما خواهش کردم واسه رو ببرین چه جوری باید بگم اصلا با. چه کاری مردم از زندگی انداخین چیه این افسوسی چیز دارید بیام واسه چی باید زر بزنین 110 زنگ بزنید چیشو بزنم بابا این میزنه بابا بز بز من از سر میترسم نکنیم دیگه وقتی باشه باشه پول منو بددم میدم. مگه میتونه ندی؟ مامان من مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان آقا مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان گانندگی با شاگردش دارن تون وسایله پشت کامیه نمیذارن تو حیرت محسن دنبال آقای مخوره این میدوه آقا خدا داره خیرم یو کرت گرفته آقا داره حرفی زده دیگه یو کرت دو بده بیا یه میشه من پولی تو میدونم. من باید درم سرویس دارم آقا عذیتم نکنم کار کارت زنگ زن. بگو که. بگو که یه ماشین دیگه بگیره اناره رو بده ببینم واقعا اینو من قرارداد دارم باشون زنم میگه من درخلی نیست اخراجم می‌کنه خواهش گیرم شد برام 70 تومن 70 تومن که ندستی یه قرارداد رو کنسل کن چی کردی چی کارا خرج داشتن علی الکی پول نمیده بدهش تو این دو تا اتاق من اون اتاق قفل مال سابخونه هست رفته آمریکا داره حالشو می‌کنه اینا رو سفارت بسال چه اون تو خوب باش تو حیات بزن حیاتون شب عروسیه بزن به کوبه بمی کنیم مرزو عروسیه من بلم کن الان درستش میکنم. آقا بارو رواندز بریم آها چرا چه دیگه کار دارم چل تومان چل تومان چه یعنی چی چل تومان بد کاری نکرد همین بس بزر روش نه نمیشه خدا نیش کمه نمیدم نمیدم جیگرمان برو. <تصفيق> آقا اینو بذار سر جاش مگه نمی بابا این باخته لباس کی دنبالش میگاش یه شهرو بردم بب... بفوشید چی میگم آروم باش راयत من حاج محسن منم من هفته پیش مکه بودم و چی کاری داری ور من میکنی آخه بابا من پامو میذارم توی مهد سراسری بهم سلام میکنن الان گرفتار شدم از این ور خونه وسایل موجگان که همه چیز. همه به داره سر من میاد بابا گرفتار شدم از همه طرفدار میسن عنکبوت مثلا عنکبوت تو تار تو آخه مکی چیکار می‌کرد؟ میران مکی چیکار می‌کنه؟ آخه تو که خونه نداری مکه رفتن رو دید مثلا نمیششم yeah. این وسط چیه؟ مجنونی بود دیگه مجنونی بود مجنونی بود آره نکش بابا خداوند خواست خب اگه مجنونی بود منم معرفی کنم نه نمیشه <متصف> من تو آموزش پرورش کار می‌کنم بدم تشخیصی دادن معلمی یا نوکرتم نه نه معلمون میرن سر کلاسیک مدرسه از عیاتم نه چی اون <فت screams> <صفح> آدم سوالات کویداد بهش جا جا چادرش انداخته سرش میخواد بره مرج تازه از حمام در اومده و داره موهاشو خشک میکنه زیاد شلوار پیدا میکنی آخ صدام معلومه چته اش اینا من چیه چی شده شما شما دوست دارین چی شده من ازمو جون تو بگو هیچی مال ندارم میگم الان برید تو تردوش هاتون رو بگیرین اینجا مم. که خالی شد هموم وسائل من نصفشو بزاریم تو هموم و نصف بقیه وسائل هم تو اتاق خواب مم. تنها کاری که این آقا محسن میکنه فکر میکنی چیه اخ. بله روشی کمش زر بگیره مم. خوبه گوندیش که کم خداوند آخی این خانواده من دارم میراد عروسی ببینن دارن یا خونه خونه عروسو ببینن دارن سلامتی نمیخوان به اون حمامو نگاهی بکنن آ یا نمیخوان در درشو در میبندون درشو میذارن نمیبندین مهمونیاد بره تو حمومو ببینه یه چیزی بگین دیگه آخه شما فروش فردای عروسی رو تو پاتختی میان میان نگاه میکنن خونه عروسه نه همون عروسی که بیا اشتباهشه پاتختی با عروسی یکی شده الان هر خانواده ای خانوم یک رسم و رسوم رسومی داری هر حلوان. هر خانواده ای میدونن فقط خانواده شما راه رسومات داره ما همه از بیره بوده معلومه دي والله من به شما به خانواده شما توهین کردم من خانواده شما قزاوت کردم خدای نکرده قزاوت چیه دارید بعضی هم همین خانواده ما هست یا نیست هست نیست هست فرزند هست فرزند یعنی فرقم هست. یعنی الان شما فکر کن که هست خب الان چیکار کنیم خب اگه هست که خب پس بچینیم دیگه اله خانمم فوری کیف و چادرشو منگذر رو کنم رو آره. میروی تا آشپس نمیم خب ساعت بش... همین رو میگیم بش... که خانم خانم آ خب کجا این کجا آ این وسط محسن توی فرهادم می‌کنه. فرهاد تنمون لنگه‌جورو بشه از دستش ده نمی‌بره. من بس کنم بچه‌میخواهش می‌کنم. اینو کجا بذارم؟ شما بعد از اون خونه‌تون اول مطمئن می‌شدید. مرتفع چی؟ بسالو بار من من قبلشو دارم میگم. میگم کسی که میخواد به یه فردی کمک کنه کار خیلی انجام بده، آیا باید استقامت این کارو داشته باشه یا نه؟ چیه با کلمات چهره بازی؟ هستشو توف کن آقا محسن. شهر هرد که نیز قانونی داره شما رفید که خونه معامله کردید قرارداد بستید نباید محکم میکردین این قراردادو چرا محکمه بابا قرارداد دارم از بیارم براتون تو کیف سفید است خلاهی بفرم اینو 哪有的 اگر این قرارات به درد میخورد خورده شما لو صاحب خونه بودید اساساً وسط کوچه نبود شما عجلمون دادید ما ما عجلت رو تا خاله کن میگفتی نه چه اتفاقی افتاد گفتید نه که متو چیکار می کنیم روز دیگه نه توک نمیوم بالا بعد حرف میزنید خیلی جلو جوان شهر بچه بعدا میگم ببینم تو همه به بزنید گفتی من همه چیو گفتم هیچ چیز نگفته بود زیر میزنیم یکم همت هم بکنیم بشینیم بهتر از اینجا پولش کجاست این فرات بابا ما خونه می خواستیم که داریم دیگه الان گوشه بابا رفیق وازی چی ادیدین دیگه کیم داشتی حالا خونه داریم بجاش خونه داریم چی حالا رضا نگاه می‌بینم ما با این باش انبار نگاه دیگه یا خونه امروز <تصفيق> شما یه جای دیگه رو بعد می‌گرفتین شاب شما ناراحت چرا اجاره کردی اینج رو بابا موسیقی همسایه چی شد زدن بابا باز نمی دیگه مگه من با شما حرف نمیزنم. زرم چقدر اجاری کرد؟ من با بفرمن با کی دارم زن بگی می کنم خون بچه هم بیست که شد می درست رو کن اه مشکان بچه رو نگینا بیا بیا بیا, بیا. چقدر پوله به من بگو چقدر نذید جواب دادم دو گفتن من باگه دو گفتم تو اینجا بودی آها من تو اینجا 60 تومن بودم مگه نمیارز میور فقط واسه من دارم با این حرفو زدم دیگه بگی این واسه شماست من دارم به شما کمک میکنم باشه رضایی باشه منم دارم میگم گفت اینجا 60 تومن 500 تومن از زیاد گفته خب چقد 40 تومن یعنی چقدر 40 تومن 500 همینو داده اینو داده یا نه تو اگه همینو داشکی منته ما رو نمی‌کشی. ماشگان ماشگان تو دیگه اگه داشتیم جا رو به امید دیگه. نه خیر 60 تا پول داشتیم اون موقع علا به چی امیدی بعد زندگی کردن؟ به باید. امید خداوند متعال. نه فرات. فرات من هیچ کاری از شما نمی‌خوام. شما همین یه مسئله رو از سر راه ما و سی نفر به مهمون داریم مثلا. عزیزم منم میگم 30 نفر مهمون داریم بچینیم دیگه. شما چرا نشستیم؟ من یک دقیقه استش هستم یک دقیقه. آدم باش. خب ما بگم کاری بکنیم دیگه برای الان چقدر پول داشت. ای بابا حالا دهواشون گرفته این وسط هیچی پول نداری. ما هم نداشتیم زندگی به خدا یا هم نداشتن دیگه هیچی پول نداشتیم عزیزم گرفته واه. بس کنیم ندارو ندارن ندار بر من. همه جیر مسخره بازیو دلقک بازیو شوخیه ها بعض از بچهای مدرس هم و و من من که بیاین لباس هیمون بپوشید زدی خر در بیاری واسه سرگرم کن یاره ببین الان همه چی ببین الان داری به ماستون توهین میکنین اونم کارش کار کودک بهش باز میکنی من ندیده بودم تو هر وقت دور میشدم نمیدیدم بابا این مسخره بازیه چیه در من هر کاری میکنم به خاطر تو دیگه نگاه کن اینا رو برای کی گذاشتم برای چی گذاشتم برای تو گذاشتم دیگه من که روز اول گفتم به درد هم نمیخوریم تو گفتی نه تو خوبی تو مایی تو گلی من گفتم دلقک گفتم از <hashtags> <Matthews> تو دومای دومای بچه دار نمیشه بچه دار نمیشه نکنین بابا قدی بچه بازیه این بارو بگیره کی بشه هم نشده بره دره همه چه کنه چون مردی؟ بچه جلوی منو بگیری بگی شما کجا رو داری که بری کجا دار داری الان؟ میشه دیگه ببین شما در نكنه مش شما یک خانومینا سلامتی به که یک ذره احساس همدردی و مسئولیت داشته یک جو درک داشته باشی مگه من گفتم برو این وضعیت منه مساله پول الان شما نمیبینید شما خودت اینطوری عروس شدی من کوچه خونه من که دو دستی تقدیمه شما کردم خودم و این شوبرم هم که بایست دیم این, این... هم مالا هم مالا داریم برات کار میکنیم هرشم که از دهنه در میاد بارمون میکنی ای رودا برم چی کار داری؟ بجات بزم؟ چی کار داری؟ بابا ما... خیلی خوب میام میام دیگه میام اینم آبا چه کاری چقدر خود رو باید کنی یه داشته باشه باشه یه فیلم براش بزن بیا بیا, بیا, بیا, بیا, من نگاه بیا دیگه بیا بیا یه محسن فرهاد سریعی وسیله یه تنافیچو میگیدن رو بزن حالا معذرم کیو وی 5 فایو نو یه لازم سینا شمو فاز بده ببین با. بابا به نو سم سیم تلفن فرادت صدا میزنن که یه چیزی در گوشیش بگیر چطور <تصفيق> که من شاشه داشتم ها تو الهی میاد حرفشون رو قطع می‌کنه بله. موفسن همچنان داره با سیم تلویزیون ورشیو. بفرمایید. م... نمیشه وسایل رو ببریم خونه مادرش؟ نخیر. <تصفح> برای که صد بار زنگ زده مادر من از صبح حالا برای اینکه هزاران مسئله داشتیم که راضیش کنیم عروسی اینجا بگیریم امشب. یه آدمی بالا بیاد توی خودش. من مادرش. روز 8 اسوسیار ببرین بگیم چیه اینا؟ اساسی کیه تو مدرسه. بگیم یه مش اساس مال فقیر فقرا. موزگان، بیچاره گان. چیزی پیدا کردی تو روزنامه؟ جواندگان. روزافتینم. تو روزنامه چی چیزی پیدا کردی؟ امروز تعطیله ما. ها؟ یا جواب نمیدن نمیدین؟ ریزه به دلشان. ببرین. تونش چقد میشه؟ باده. بعد پیرزن سوار دو چرخ پروسی بعد پیرزن بالای تیر چراغ بر بعد پیرزن بالای درخ بعد پیرزن شهر بار جین آبرویزی افرحاد کمک به فقیر پغر آبروزی خانم خب نمیگن اگر که اینا مال فقیر پغراز نیاز بندن چرا نمیباید بدید به خودشون به اونا رفتی نه من نمیدونم آم ولی من و حسین جای عروسی رفتیم کشت یادته موسم دوشینا رو یادته موسم نه من الان چیزی دوید. یادم نیست باری اینال بدم مام که اگر به خودمون بود به خاصه رو مادرم اینال نبود رو میفتدیم میرفتیم پابوسه امام رضا سبابم بش بخشه ما حرف میزن اومدم تو چه؟ تو چیکار داری میکنی اینجا بلنشین بابای ای بلنشین موسمی ما با تو چی کار رو ده. ده خب اومدم بیا اینجا برات درست میکنم چه تو تو اینو درست کنم چو تمام میکنم کنم ازت بس کن. چیو؟ میدونی خودت <تصفح> فرهاد یه مرتبه یادش میفته که پاش درد میکنه. اولش خیلی دردش اخر. بده. ول بده. برو میبخشمت برو به امید خودت. الهی چش میره به فرهاد و میرسه تا آش بسونه. رانندگی کاملا بیخیال، خیال پای باریش داره تخمه نمیشینه. ما یه ساعت وقت دادی دیگه ای زنگ میزنه چرا؟ یا چیزی چی؟ همین اول برف میشم چی؟ یا نیستی؟ اوه مسلما نه. آره نیستی؟ اون ده صبح خونه جیاری نارو جام کردیم. بابا اینجا بیا اینجا. من نه. من خودم میوارم چی؟ یه سنسوری. یه خیروی و یه شیلک بلوگی. یه ماشین سیاهرنگ میاد توی کوچه بومز ک انتاش. هنیهایی که قراره تو شریفی بگیرن. یه خانم همچین چی و مکالمه چادری از ماشین پیاده. تی تی این انورش ما کجایم؟ ساعت گم. ساعت گم. خوبیم بروش کنارش سلام نمیشه برد شما باید دوست آقا فرهاد بشین حتما بله مادر خانمشون هسته آ بفهم خیلی خوش اومدید ببخشید سلام دیگه Evet hoş geldiniz Ya Allah Yürüşe Avrupa'yı yürüyün. Ne kadar güzel. Ya Allah. Ne olsun مادر الهی خانم شنتال دادا مادر سلام مادر خوش سلام علیکم خانم آقا محسن سلام خوش اومدید شکراً سلام کن مادر برو واسه برو واسه برو برو برو برو سلام کن سلام کن من نگه خوره اینم شیر میخوره به باباش رفته من تا دوم دوستان و بعد شیشه رو دادن به بوس من دیگه دیرمه خواستم به شما خودم زنگ بزنم اما خب دیگه یه رفتارم شدم منذارت میخوام باباشت خودم گفتم بیام دیگه به این چه وضعیه چه وضعیه این ما چه یه مکر رفتن آقا ماسنه بحث که بچینیم همه چیزو هم. ممنوع قبول باشیم بردار الله دلت نقضه آگه سواب دار همه خوردم خودشونو مشغول نکنم دفتر واقعا عجیبیه انشالله نصیبی همه بشه از بابایی دم دارم مال شماست؟ نه اونو مم. نه استفاقم ببخشیم قسم یه میبوازه هم میتونیه که دروجه بجارم ما در جلسه اگه شما نداشتید تا کارگری میگرفتی بد نبود بله منم گفتم باقا ما بله. آروش کچی خانم مشگان بلادر حد اینکه کار آب افتاده خودش خوشگله ماشاءالله اصلا آروش نمیخوام به مزه نفسونو مهمون ها اینجا جا میشن بعد جا میشن خانم ها میان تو آقایون هم تو حیاطا بارون نگیره بارون نمیگیره به امیدشون به بهانه اینکه یشینی دیگه داره با موسی میرن تو آشپزونه اینجا تا یک ماه دیگه ممد ما نه میشه مادر چقدر هم. مادرش میرن تو اتاق یه وایت واقعیت که یک گریز به گوش من ای است به خونی واقعیت ای. منه که قابلا منجورو می دیدم همین امروز اومدی و همین امروز هم عروسی نمی نمیشده شما اینجا رو ببینین چون اینجا پر بوده آدم توش بوده نمیشده ببینین خلاص شدنش ما قابلی اینجا تعری ببینیم به من گوش بده نشده وضعیتیه که پیش اومده من چیکار بکنم به جز اینکه شما من آروم بکنین من با شما رو آروم کنم جای چیزی قاعده و قانون داره الا بختکی که نمیشه عروسی بگیرید الان این همه راه خوبیدی اونجا بیا بیا اینجا اینو بگیریه تو با این کارات آبروی من امشب میبری آبرو رو هش می کنم من الان آبرو رو نگو که ما همه این بدبختی که داریم می کشیم به خاطر آبرو جناباییه برای اینکه دوستا و همکارای شما فامیلای شما بیان اینجا عروسی دخترتون رو ببینن خونش رو ببینن بس شما این جواب دست در نکنید این وضعیت اصلا برای من قابل قبول نیست قابل قبول نیست من الان مدام مؤسسه از شما کمک بخوام از شما درخواست کمک کنم که من این ادبیاتی که شما داری یک لحظه کو نسبت دو چیه چی شما میمت من هستی مؤسسه ازم کمک میخواستی دختر آره واقعا کاش که همینطور بود که شما ببین کاش همین مردو می‌کردم من از دختر خودم کمک نکنم نمی‌کنی چون من اساسستم گفتم که یادت بیاد نسبت شما به آخه یک جور رحم داشته باش از در این خونه اومدی تو باغنگر اسفیکو نگفت که این خونه پره. مبارک باشه. هیچ ذره با با شما یادت میاد که فرهاد آدام فرهنگی از کجاش آورده این خونه رو خریده؟ از کجاش شما آورده اینجا رو اجاره کرده؟ روز شروع شما همینی به که اینکه با هم امید بدی، ناامید می‌کنی آدمو. همیشه می‌خواد یکی باشه یه حسینو با بچه‌گورو از تو ایون میپره وسط الهه مادرش. برو با ببینو ببرین باش. ای بچه گربه رو از سینا میگیره و همچی تو دستش نگه کمک نمیخواهن؟ کمک برای چی؟ کوی گربه نجیست دختر بله تازه میگم برای سلامتی هم اصلا خوب نیست برای زن حامله مشکان خانم تیر خلاص و زد و رفت حامله من چه میرامت من هستی؟ سینا سینا نخموش کن قموش کن سینا من نگاه کن قرم کن قرم کن جهن قرموش کرده آفرین نوشه نکنی راشن کرده سینا اله با شما هستم خانم به من نگاه کن دارم به شما نگاه میکنم من, من که گفتم ایده قدیم من بیشتراتی هم شما هم پذیرفتی. از اول اروسی خراب بود پنی ماه آینده باشه کدوم از ما اینجور زندگی کردیم من اصلا نمیفهمم شما چرا خوای جای همه ما زندگی کنیم من که خواستم جای همه شما زندگی کنم بله آرائش کرده؟ خیلی کار داریم حتی من آره احکام نمیخوای وقت داشتم میرفتم لباس چی؟ اشاره میکنه به جبه بزرگ کادو پیچ مادر اله میره سر جعبه و همچنه لباس رو برانداز میکنه مادر لباس کمی لمس میکنه بعد در جبه رو میکنه. زشته میدونم چرا گرفتی پس؟ آره زشته واقعا؟ یه مشکلت میکردی بد نبود میخوای نپوشمش نه دیگه بهتر از هیچی مختلطه؟ نه خیلی نیست ساز آباز؟ نه نوا؟ نه نه کسی که نمیدخسه نمیدخسه محصول کرده به دیوار آشپزونه و با خودش حرف میزنه که فرهادم سر میزنه این بچی گروه رو کابله تو راضی نبودی بساله بذاریم تو حمام چه من بود همه بسال اینجا بخش باشه میران آنها بیان قضا خیلی زینا باز این سینه کارو بزنی پای دار با اینجا زدتون آقا فرها تشیف بودی ناش خانم آقا فرها شمایی این یکی هم شما این. بله در امور هنری هم در واقع فعالیت بله بله توی فیلم محسن و فرهاد لباس حیوانا رو پوشیدن را دارن برای بچه های نمایه شجانه شجانه شجانه ببینم از اما باید سر بخور بزر فیلم شغل تو چیه؟ شغلشن هم همین ها دیگه حاش خانم همین خیلی هم در آمده چون باید اتفاقا بله خندوندن مردم هم داره باید اجازه از اگر برد بیر بدیم باشی بسته دیگه آتی سوزوندی مظلوم شد دیگه سفارش نکنم برای شب همه چی آماده باشه بله شما برگردید همه چیز حاضره شغل آقا همینه چند بار بگم مادر معلمه بهش نمیاد آخه چجوری هم بایی معلمه بگو این کار نکنه برای ما خوب نیست چهش میگم نکنه نکنه میخواد بخونه حالا بخونه نیست که همه فامیل خیلی لطف و همراهی داشتن یک زنگم نزدن میخونه؟ نمیخونه میخونه گربرم بندازیم بیرون مادر چرا نمیری شما خدا آفرزیم مادر با چشم قرره میره اینا مال تو هم نه خیر محسن جمع کرد وری فقرم یه سرطون داره پر میشه آمیجی میکرد بله بزات پر شده بله چیکار کنم؟ دارین می‌بینین که وضعیت بده بده بده چی؟ بدی دیده افشینش شلوارو میگیره جلوی الهه پشتکش بپوشه. ببخشید آصف خان. مکه بوده واقعا؟ نه شما میری فقط ترکیدی افشین از بس موضوع پرتقال سیب خوردی بس که. صحتشانه. چند. محسن دستشون که جیباشمون وا ایستادن فقط به این همه کارتن نگاه میکنن. آتولیه گمشه بوشقا بجاویزه نکردی آتولیه یا؟ یهنون چرا چکن فرهاد چسبیده به ستون رو زور میزنی که جا بجا بجاش کنه ناس. محسن میکوبه پس سرش من به شما نگفتم تو دست و پای بزرگترا نیا موشقان سینا رو برده خوابونی تختش گفتم گفتم وقتی یه آدم میاد، میاده که آدم نمیشناسه به من به شما میگم خاموش کن شما میگه چشم غریبه نیست که که بس ماره طوله خیلی خوب الان چشات موره. چشاتو هب میدار شیطون توش نره؟ هم بذار توش بس خونه محسن با گربه بازی میکنه و فرهاد به نخه تردهی اوپن ور میره محسن خرابه ها گیره مال خودت. عجب ما در زنی داری ها او او, او. فردا میگهد با اینا رفت آمد نکن بابا خوبه یه چند وقت یه سمتی بهش میدن دست مارم میگیره چه موقعی هم رسید چه دومی داشتی برش تکون میدادیم تو مثلا کار میکنی؟ تو کار میکنی؟ مدیر قرضال حسنان مم. مدیر بگه میتونیم می اختلاص کنیم آدمای های سالمی هم بابا ما ما که سالم نیستیم ما اختلاص میکنیم فرهاد جون فرهاد عمر فرهاد قلب فرهاد خب فرهاد چلواره رو بفوشم و یه سیگار بزنیم و دیگه کار فرهاد کار کار کار آقا محسن من به نظرم راه حل خوبیه این صابه موجان از حرفای آقا محسن همچنین قند تو دلش آف میشه این قلزه صابه چیه امروز؟ ما اساسیه رو میتونیم ببریم صابه اینه اصلا مشکلمون حل شد تقریبا شهر صاحبه مزقا. بله دیگه یعنی اساسا های من ببریم شهر صاحب اون وقت چرا چرا که خب اونجا جاش امنه دیگه کی گفته همین آقای خواهر آقای خواهر خیلی غلط کرده نه اینا هم انسان های هستن یعنی خیاله برو هم ایدیم دارت بچه خواهر خب نره بمونه همون جا تو کوچه بزاشتن براتون میارم تو کدوم تو میارم تو همین تو این تو اون تو اون تو, اون تو. اون تو. این همه تو من نمیدونم شما که اصلا به هیچ فراتی مستقیم نیستی جلوی دهنتم که نمیتونی بگیری هر جون که نبات باشی هستی برای زن حامله اینجا خونمه هر جا دلنگه خاطر حضور به حمیرتون خانم مجنب. ای چیه مجنب. تو چرا اینو حرفمش همش یا بابا به درست حرف بزن درست حرف بزن دیگه با شما هستم الای خانم من اصلا نمیدونم برای چی اینجا هستیم میشه به من بگی قوز عالی چه بخالی ما اینجا هستیم که زندگی کنیم مثل دو تا کفتر اینجا دید. خونه ماست بله اینجا خونه ماست بله خوشگله خونه شما نیست خونه ماست نادید خونه شما نیست شما شما اینجا... که قرار شما, شما, شما از اینجا قرار دادوشو نشه که پولشو بده اجازه بده همون لحظه است که میگم نباید با هستی همون لحظه است شما از اینجا ردین برای من توضیح بده شمرده بگو به ب... توضیح بده اینجا مال یه آقاییه مسعود خان که الان علی زندگی میکنه لوس انجلیس معلمه نمیتونه بیار موشقا میاد در تعیید حرفای فرهاد میشه عداده عداد فراز شوخی هنده رفستن نه این خیلی دوری میکنه من خندم زنگ زده بزارن بزارن زنگ, بزارن. زنگ زده به مسعود خواهم که آقا مسعود خواهم من خونه رو شگاه میخوام پاشتم گفته یه نفر قابل اعتماد پیدا کن کی هستش کی نیست آقا فرهاد بدیم با آقا فراد آقا قابل اعتماده بله بله اصلا که من نباید بدونم پیش کدوم اینا کوزه عالیه یعنی به خاله کی دفعه بگو اصلا خونه نداریم نه نداریم خونه نداریم منم ند شما چرا هستی حواش رو نمیری نمیذاریم محب بزنم دیگه محسن از اتاق میپره بیرون و اومد محسن و مشگان میان تو اتاق سر <تصفح> لباس عروس که نمیدونم رو تخت سینا چی کار میکنن وای <تصفح> <تصفح> <تصفح>. <تصفح تصفح>. <تصفح تصفح> چه آدام سیم هست هر چی مجبان دور دستش می کم که نمیشه کندم نمیشه دوش داشتم درم خواهد محصر تو تکر... باقید با یخ باک میشه یخ کنی بیارم امجوز خدا امجوز امجوز امجوز بیره بیره میگم نباید بگیر اینا اینا چی تربیت کرده ما؟ نکنم حالا تو هم محسن همینطور که لپ رو میکشه کمربندش هم از شلوار قبلی طوری میکشه بیرون که مجبا سر سینا رو میگیره تو باقلش محسن این روزه هیچ وقت رو براموش نکن بای بای بای این با نفت با میشه آره خب این حفظه تو خوش دکت سکت شد سکت شد کجا رفتی تو اینو در حال باز کردنه یه کارتونه هر چند لحظه یه دونه آلوالو خوشکم بیندازه تو دهنش ده پاشه این گربر بر انداز بیره فقط بلدی بخندیم. چیکار کنم خندن میگه هیچکار هیچ بیتا گریه کنم سینا بیا اینجا آفرین پسر خوب بودو بیا باریکرد بیا کشتک پرارا گذر زیادی تو دست صحبان نیستی به نظرت؟ نه نه اله خانم کار داره بابا دور باشت آفرین خاره نباش تو دست صحبان نباش باریکرد بودو برو بودو برو اه. سینا سی بوی چه بویی میده فرحوت پا شا قد بابا سیگار رو بزنیم و شا من حالم خوب نیست پا این گربر بنداز بیرون فکرم یه کاری کردی لاغل کش بلک مورغان پشت در توالت تو حیات منتظر باده تاقا باده به تا اشاره میکنه که بیاد و به گستاش بگی که زودتر بیاد بیرون آده دا قدرانه بده بده داده تو موشگان هی اشاره می کنم موشگان سابون از چیز رو می دارم موشگان موشگان امروز امروز امروز بروی اینجا هست چرا راننده از توالت تشفیف میارم بیرون و موشگان سریع با لباس عروس میره تو اما با صرفه زود بر می گرده اصلا قابل تحمل نیست شرمنده مجمون جلوی دهن و رو با شالش میکشونه و در توالت رو هی بازو بسته میکنه انگار اینجوری بویه بر زودتر شما واقعا هیچ جر رو از بابا رو ببری. اگه داشتیم که میبردیم اون پدرش و از اونم کچیکه. همین فقط؟ خودم هم اینجا کسی ها ندارم آخه برخاله دوستی آشنایی فامیلی عمه، ای خاله ای؟ چون که تازه نیومدی تهران. نه 8 سالی هست اومدم تهران. که کاش قلم پا میشکسه اجازه می اومد. آخ اینجوری نمیشه. شرمنده آخ من تقصیر ندارم من باید برم به کارم برسم. خوش یه دو ساعتم روش چی میشه؟ پولش هم حالا یه این وسیله رو گوشه کوچه یه پلاسیکم بکشیم. وسیله منو بذاریم گوشه باشه. آره خب چه وسط کوچه؟ من به پا وسیله شما؟ مداری دیگه همچی وقتهایی میخوره دیگه خب الا شما جای ما بودین چی کار می من اصلا نمیذام کار هم جایی بکشه. بله هم. خب شما کارتون درسته. مرد یه همچی روزه خق شده. مگه به خاطر شما اون بچه نبود تا حالا رفته بودم مرد باید ارزه داشته باشه مرد بکشه موسیین که دم ایون سیگار میکشه انگار به قروش برخورده هم حرف مرد ده. مرد که میشنه سیگار بلاب لب می دو پاریچال کلا دیگه؟ آنشو باعتنی. باعتنی. آره. شو. آره. با حالش چی نیست؟ حافظه باشه اینا بگی موسی. این دو تیکام این مسیر داشتن دزیکی باتی هیبوس هر دو بچه گربه سالم وقتی موسی راننده اومد موسی دو بچه گربه رها میکنه میاد سمت کمیل. بذار لارو بده. رو موسی سیگارشام پرت میکنه سمت خودم تو کی مانده خوری ما کل رو تو اولی چه بمونم ببین ببین باشه باشه ساقون یه جای خوب پیدا میکنیم موسیل ها یک از تو نمیابشین آخه چه بین خوب اله خانه هم حالا اضافه من می کجا می برید؟ نه یار نه یار فرید کجا؟ به من راست قول بدید. یه قلوه نمیدونم حالا می بینید. شما تو رو به خود بعد یه لحظه به من گوش شو شو شو شو. شما که تا اینجا همراهی کردید. خب یه امشب دیگه یه هم امشب همراهی کردید. خب شما همراهی کردید. حالا من یه کاری با می کنم. نه ان شاء الله. سلام، آمین بابا. خداحافظ. بعد فکر کن عروسش من می‌مالم مال تو پستی آدم رو هدیه میشه مال این کار را نمی‌کند چه می‌کنیم چه می‌کنیم چه می‌کنیم چه می‌کنیم توش رو حرفتو پس میگیری انقدر زور با اصلا رو نداری دوست سافه باشد. شما خواهشم دوست ندارم مرد باشم آقا نهایی شد میبریم سافه جم من که از اول بیت گفتم ببریم مرد. اونجا نو کرد که نیز نمه شما رو میشه. من؟ بچه‌ای من حواسمی دو ساعت بیخ گوش هی هی بیت صابه بی دست سر من که نمیتونم اینا رو عبد بذارم این پوش بمونه من نمی‌ذارم اساس چ... و هیچ جا نمی‌ذارم من می‌برم من نمی‌ذارم بذارم نمی‌ذارم حالا می‌بینی اگه من مردم جلم دارم یه کار که برو با مسخره بازی نکن آقا این چه وضع لعصه شما بگی لحظه به من گوش بده هست با من فقط جواب بده با زمین بذاز فقط خودش بیرو میکنن شما این می آره درسه درسه. من درسه. من چنان می ازش حساب زنش بعد آره محسن فرش لوله شده رو میبره که یه سمتش محکم میخوره تو سر الهه. چیکار می کنی؟ بابا تو اینجا من ندارم. بیا بونو. بیا بونو بابا. بابات خاطی بابات نازتام رد رفته جلوی کامیون بارساده. اون گلگیر کامیون میگیره و میشینه روی حالا دیگه خانم با گریه دراز میکشه رو آسفالت زیر کامیون شماست اصلا چتونه این کارای همیچی داریم ما رو سیاه میکنیم ما رو یولگیرو بردیم به من به چه روزی انداختیم گفه چه ما آدمی اصلا که با این خواب در روی کسی رد شم پشت کوک نیومدم میفهمم این چیز دارو ما آمدم سبب کنم الان دارم کباب میشن. ا ما این یزون بس از صبح تا لق ال دو کار شما اینو دست ما ز ما ها بابت بودنه اما تبه تبه بابا یه تو دور با بده بده تو با می میگه ما نمیفهمم گفت اوتوبان بابا این داره میگه یکی از این ماشینا که بار میبره اسما بتونه میوردیم میگه ها اوتوبان آره دیگه میورد ما رو شوفیک ما مزه راو به سقط نمیده خب نه زنگ زدی میگن تعطیله خب یه جه دیگه زنگ میزنه یه جه دیگه هم صد جه زنگ زدیم میگن تعطیله یا تعطیله میگن بود از قبل رزرو میکرد شما رو پیدا کردین از بابا یا یارو بامبول داره بود دیدین دیگه خودتون دیگه بامبول ما بامبول آورده بود ما نه اون صاحب بود صاحب ما زنگ زد همینو میگم شما بودی که اون زنگ زد ما ده بار زنگلیم التماس خواهش تو پول بهش من پول ندم بهم خونه میده خب غلط میکنه یارو نده الان خونه برای تو من به جای تو بودم تمام از بابا رو میبردم میگه ارزون فروختم الان زده زیرش میگه خسارت میدم یعنی چی وقتی خونه بره این قرار بسته بس دیگه حرفی نمیتونه بزنه. در دادو نمیتونه سقف کنه. من تو آن پاسی نه. علی بابا اصلا هر قرار منم من گرفتارم منم بیچارم منم زن و بچه دارم باید برم. باگی ماشین برای خدام ده روزم میموندن چیزی. نه... محسن باگی شونه ماچ کردن این آقای راننده جوون مرد و نمک گیر می‌کنه. بابا منم معرفت دارم متوینم این گرفتار کمکش. بفاسان شه بده. به خاطر آقای راننده همش بود قبط قبط میندازه اون نر میشه. راننده و افشین یه نگاهی چی به هم میندازن و بیخیال رفتن میشه. این درفت مژگان از بس که گریه کرده به سکسکه افتاده. الهه دستاشو قفل کرده پشت کمرش رو به دیوار تکیه داده و بیرون رو نگاه میکنه. سینا هم رو مبلا لم داده و عروسک خرسیش رو بخر کرده الهه با یه قیافه جدید شادورش رو میکشه روی مشکار محسن و فرهاد بلا تکلیف دم در ورودی وایستادن رو منتظرن البته خودشونم نمیدونن منتظر چی الهه سخت و فکره یه نگاه به فرهاد میندازه و فقط عدم میزن واقعاً این همه کار رو قراری کی انجام بده چرا همینقدر بیکارن تو بیتو جالا یعنی جاگوزش دید بیرون یه وقتی جکی چونه ولی چیزی میاد میشه آقای راننده لباس عروس ساورده موش سری سریع از جاش بلند میشه و میگیردش اونا بدی من آقا بخواه کسیب شده بود برده بودم به شورمش بعد دیگه چوروک شده و حرف تو حرف اومد و وقت نشد به شورم جاش همینجاش شده بچه هست دیگه الاهی که صورت سنگی بود با این خبر صورتش یختر شد این تورینی الاهه این تمیز میشه نفت زدی آره آره یه زن نفت هلا خوب میشه اصلا چیز نباش باش اون من اون خیلی هم کوچیکه. اصلا آره نه اون صابون سابونتری بزنیم بعد بازاریمش تو حیاتیم تو هوا که باشه اون درست میشه بعد این گل رو ببین گل بزرگر رو بزنیم رو آدامس مم. بعد این میفته اینجا بشه این رو روشو که میپوشونه بعد ببین این این چیزه این اینجاش بدن نماست خب یه اشارپی چیزی هم میتونی اندازه یعنی من میخوام بگم خیلی چاره داره دیگه از من نگرم این تلفون رو به من میدین اوموژ باند لباسو میذارم به الهه لایه حالا تعوونی می. محسن شماره میگی. درست زنگو سلام آقا. جواب نمیدی چرا؟ من دوربالی بله. انت... <تصفح> دارم شما بگی. من تو آقا آزادخونه خریدم. شوره کنه بله. خب اصلا کارات دارم بهت زنگ میزنم دیگه. آقا ما اینجا گرفتار شدیم چرا بهت زنگ نزنم ما اینجا بیا ببین وضعیتمون رو اساس تو کوچه با من... شما هزار تا سرخصون میشنا یه جای به ما بگو من خانومم حالش خیلی بده بس. بس. بله بله داره سکته امی کنه میتونی؟ آقا ما بعد یه عمر تونستیم یه وجب جب بگیریم با هزار تا زرز و گوله آخه دونیم آقای معترم خست نباشیم ببینین ما الان واقعا شرایطمون شرایط وشدناکیه از بابای من همه وسط کوچه بعد نه میخوام بگم وقتی ما تمامو کمال پول شمار نه. ندادیم این فراد شما دیگه این پنجره رو کور کن اینا. ما ما همه پولو ندادیم نه من بودم در فقط خیلی خوب ببخشی من مزاهم شده خب فراد یه چیزی بیا بیا تو همه پولو ندادیم نه بیا تو خاله منو سبق میگویی چطور و این شما برای چی پول میری همه پولا دادی ولی خب. نگیدی شما داده فرض کنیم دیگه مشکل نه خب برای نه. چی ندادی دست دادم شما الان چرا پول ندادی هیچ کی نمیده همه میذارن محزل قصه اخر میذارن خب شماتون فرمودم شما الان اگه پول داده بودیم ما الان سر خود زندگی خودمون بودیم خب و بقیه پول چیکار کردید هاست نه هاست جواب من نیست الان نه کجاست الان اگه از کجا شنگونه شما اراده کن من خب من میگم اراده, اراده میکنم شما پولو بده بریم بدیم به این آقا ازم ممکنه من دادم به یکی از دوستان به من قرض داده واقعاً محسن و فرهاد از این حرفشون به نقد احسان استفاده میکنن برای چی ماشین ثبت نام کردم به خرابتون میگردونن شو من نمیدونم فرهاد نه بهت میگم حالا تاخل... ماشین 10 تومن بقیات شو چکار نه, نه از این ماشین اتوماتیک یعنی یعنی ورداشتی از آقا محسن پول قرض کردی که اون ماشین رو بخری بهتون میدم خیلی زود بهتون میدم از کجا میدی طلب داریم از خیلی‌ها چند سال آرزوی ماشین داره این بچه خیلی دوست داره فرایدام خوبه یعنی واقعا زن و بچه خودت آدم نیستن همش بدیه مشرا مشرا خوبم بهتون برمیگردم فردا میره دنبال موشکون محسن الهام که حرفی ندارم بعد از اون. سینا. مش جان. پولاشو. یعنی الان ناراحت شدی؟ پولاشو نه، بگو شما. پولاشو بده دیگه. چه کار داریم کاری محسن. اومدیم جلو برای دل بابا. مش الان ناراحت شدی یعنی تریپ برداشتی؟ چقدر انرژی داری بابا مش کجا؟ دست به من نخوا، محسن. کجا داری میری؟ في خمره كريمنا نمیشه میخوام برگردم نمیشه بابا برگردم ازجان امروز تا دیروز فردا من گافرو پس میگیرم خب دیگه آز... برای پولش کارم کنه بده به یکی دیگه بر من اجازه دلنگو تراوشم من میام دو دستی دلیل خودم میذارم جای نوبت برین خونه شما شما کجا بریم اون که باید من اینجا خونه شما شما بمونید با این امای بیرونی که باعث بدبوسی نام میکنه خب منم من از شما معذرت میخوام آقای مقصر الان معذرت خایه شما به درد میخوره چیکار کنم از یا چطی تا قرب می خ خدا بذارم کنار میگم به من گوش بده یه لحظه من التماست می کنم خب شما وضعیت منو ببین من اصا هیچ چیز نمی خوام فدای سرتون لباس عروسی هیچ چی فقط میگم که یه شبو بذار یه شبو ما برگزار کنید حالا محسن جعفر شده از توی این راهروی تنگ از میون همه رد میشه و درو چند بار تو سینه فرار یه کوبهو میگیره اموتت بلاخره هم میره تو حیات سیگار بکشه دستشو رو میگیره به دیوار هم چی حرف میزن اینگه نفسهای آخرشه چند نفر پیدا میشدن اینقدر میزدنم که جونم دارم سرهاد میدون رو ها نمیره دور میشه بازم فرهاد میزنه به خنده و شکری پرشه سنگ روی آقا موش کن صورتش رو تو سینکه آشپس خونه میشوره میری که وسایل چایی رو آماده کنه چای داشتی. سارا. چیزی شبیه کتری برقی میاره و دو شاخهشو میزنه میپینه. الا هم دوتا تا لیوان میاره و چای کیسه ای توش. چای کیسه شیرینکان باشید مجگان در غندون رو داره. اله های جفتشون میشینن رو زمین رو تو دو سر روز دیگه قشنگید سر صحبی نست ساره ما هم که خب نمیدونستیم فکرم کردیم که اینجا رو زودتر قرار بگیریم از شما خب ما هم نمیدونستیم فهم کردیم تا سما دیگه اینجا رو خاله نمی کنیم. اینا رو میدونم که من موشگان یه مش تنقلات مثل اناب و آلبال خشکه از تو جیب منتوش در میاره و میگیره سمت الاهه اداله یکی برمیداره و میذاره درچ دختر یکی آباله رو برمیداشته یعنی بسر نمیدونم من اگه جای تو بودم نچه رو مینداختم من که اران نخواهدم دیگه دیر که من این آباله تو شما هنون جوانی خیلی وقت داردن چه وقت بچه دار شده همون چه وقت شوهر کردن باشیمونی خوبه فرهاد <تصفيق> بالاخره لب این خانم خانمم به خنده باز شدم و خنده شونو دیدیم نیست مرده همه تیریشنه یه چرمم چیه؟ <تصفح> <تصفح> <والا>. تیریشنه؟ قرده هایی این چرم و چرمم که اینجور قالب در میارن قرده هاش به اونا یه مثلا مرده هایچی دراز و کتان هم باشن همهشون مال یه فعال چرمم آب جوشنه مرده ها اینو زده بودی تو برق؟ بوریا زده بودم اینو؟ می ای غورنی ندی این غوری نیست دیگه چیه ای ببینم این چیه اصلا از کجای ای ای آب ریختی توش خب من آب یادمه بعد این اینجا یک پیچ داره الان وقت نشستن نیست عروسی سر جاشه بعد بالاشم بچی بنشین ها گور دلش خی... ای پر این مشگان خانم از مردا که همیچی آه میکشه به نظر جا میشه احساسیت تو اتاق چی؟ احساسیت تو اتاق و همون جا میشه حالا محسن موشه دیوار حیات میشن و فرهاد داره سیبگاز میزن من آدم اصباب کشی نیستم خودم میگم بگو کوک هم میکنم ولی اصباب کشی نیستم درسته؟ اشتما میگم مادر اله هم دل واپس دوباره سر میرسه چوفیدسه گون بونه میدون چرا؟ آها من سوت گیرم. روت چه سوتی؟ سینه پلیس. موزه. اربعه. موزه باشه بقیه وسایلام بذاریم پای. چی شد؟ می سلام آچانا. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم. الا جان تو هستن. من گاز دارم میکروب داره نخور. خور زندگی نداره. مش نوه چی گفتی گفتی شیشه دسته وسلو بذاریم پایین آره الهی میگه اله اینجا که هیچ فرقی نکرده واسه اومده اینجا چه کار و من ممکنه بگی مگه میتونم نیام مگه میتونم کار کنم دلم اینجاست تو که هیچ کاری نکردی تا شب درست میشه همش چی رو درست میشه همه حالا بعد اومدم کمک؟ من کمک نخواستم. من کمک خواستم؟ اگه کمک خواسته بودی الان اینجوری نبود. حالا چه جوریه مگه؟ چشه؟ بگو بگو به من سخت ما مو یه مسئله‌ای داشتی و حل شد. حالا همه‌چی داره درست میشه. من مطمئنم تو خل شدیم آره من حل شدم. زندگی من همین همینجوریه. ولی میبینم مدل زندگی تو. تبریک میگم مدل زندگی بله. تو. بله چشه مگه؟ چش نیست توی این مدت تو هر کاری داشتی کردی. زندگی خودم هر چیز دلم میخواد زندگی میکنم مبارک باشه زندگی کسی نمیاد اینجا؟ آفرین نیاد با من درست صحبت چی بگم؟ میگم میگم نیاد می نمیگی کسی نمیاد میگم نیاد معلومه که نمیاد اینقدر دخترم رو بیشتر که با طلبش تو چان نره وای کلا خودزم نمیاد نمیاد هیچکس هم نمیاد خیلی خوب چند بار تکرار میکنی این حرفو 100 بار انقدر میگم که بفهمی اصلا قرار نیست کسی بیاد اینجا الهه با شنیدن این حرف دست و پاش میلرسن. فقط مبهود مادرشا نگاه میکنه واقعا تو فکر کردی من کسی رو دعوت میکنم میخواستم خودت ببینی که نمیتونی حالا بخش کن مگه چیکار کردی؟ شام گرفتی برای بیسی نفر با ایجاره چهار تا سندلی و خرط و پهد چقدر پول دادی؟ دویست تو من؟ بیا این سیست تو من حالا عشق بریز تو نمیفهمی چی کار داری با مادرت میکنی؟ واقعا این مهمونی بود که به درد ما بخوره؟ این در شعن ماست؟ نه در شعن شما نیست پس رو نزاشتیم. مثل آدم چند ماه دیگه روسی رو بگیدیم؟ چند ماه دیگه بعد حالا ببنیم. مادر الهه ماتو مبهوت معلوم نیست کجا رو نگاه میکنه همه ی از بابا زیر سخف کاذب حیات جمع شدن اونت ردید شد ما رو خبر کن خداحافظ های جی عدفه ندار دیگه خداحافظ تشبی بریم شما میونی شب نیا؟ شب تشبی چی شده؟ چی فرهاد محسن دوتا لنگه در خونه رو میبندن و لولاش رو هم میندازن و تمام داستان خونه ته کوچه به شماره پلاک 154 م همینجا به سر رسید، اما کلاقه به خونش نرسید، بالا رفتیم ماست بود، اومدیم پایین دوغ بود، قصه ما شما بگید. این مثل همیشه من ملیح شبانیان نویسنده و راوی در کنار بزرگواران، علی حاجی نوروزی صدا بردار و فرشاد آزرنیا سردویر و تهیه کننده رادیو فیلمی دیگر رو تقدیمتون کردیم تا حکایتی دیگر از همین مردمان ساده دل بترو.